عزیزان، می دونید بیشتر از کی انتقاد می کرد؟ با رهبران مذهبی زمان خودش به تندی حرف میزد. به دانشکده کوچک کچک کتاب مقدس خوش اومدید. امروز ما زندگی و خدمات ایسا رو از انجیل یوحنا بررسی می کنیم. ما باید یاد بگیریم که بین مذهبی بودن و داشتن رابطی صمیمی با خدا تفاوت زیادی هست. بین مسیحیت حقیقی و مذهبی بودن تفاوت زیادی هست و عیسی رو دعوت میکنه که رابطه ای حقیقی با او داشته باشیم و او رو پیروی کنیم با این حال رهبران مذهبی اون دوره اینو نفهمیدن با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم سلام من خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردیم که کلام خدا رو باز کنیم و با هم اون رو مطالعه کنیم در باب پنجم انجیل یوحنا عیسی به این ترتیب باب صحبت را با رهبران مذهبی باز میکنه. شما کتاب مقدس رو مطالعه میکنید، چون خیال میکنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت. در حالی که کتاب درباره من شهادت میدهد، شما نمیخواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. این گفتگو در انجیل یوحنا باب های پنج شش هفت و هشت ادامه پیدا میکنه. در ابتدای یوحنا باب پنج، ایسا مردی رو در اوز بیت هستا شفا داد این یکی از شفاهای هدفدار او بود چون به این مرد گفت که بسترش را جمع کنه و از مقابل معبد عبور کنه و بره عملا او از مقابل معبد دوان دوان عبور کرد این برخلاف قانون سبت بود و نباید چیزی در این روز حمل می شد. پس وقتی او کاری رو کرد که عیسی صراحتن به او امر کرده بود آشکارا قانون سبت رو نقض کرد و این توجه رهبران مذهبی را به خود جلب کرد شاید فکر کنید که رهبران مذهبی وقتی دیدن مردی که 38 سال علیل در کنار حوض بیت خوابیده بود و حالا داره میدوه، باید از این واقعیت به وجد اومده باشن اما برعکس، اونها ناراحت بودن و او را متهم می‌کردن چون داشت قانون اونها رو می شکست این نشون میده که اونا چقدر از روح قانون دور بودن. عیسی عمدن و با هدف این شفا رو جاری کرد چون میخواست در این مرحله از خدمتش درگیر گفتگوی با این رهبران روحانی بشه چون حقایق زیادی بود که قصد داشت با این رهبران روحانی درمیون بذاره ما در انجیل نظیر دیدیم که عیسی به وسیله موعظه مباحثه و مسائل ها تعلیم میده به وسیله گفتگوهای دوستانه با رسولان تعلیم میده که تقریبا کاری مداوم بود و اینجا در گفتگوی خسمانه با رهبران مذهبی نیز مطالب زیادی برای آموختن به ما دارد بعضی از عالیترین تعالیم او در این گفتگوهای خسمانه نهفته است که بلافاصله بعد از شفای مرد علیل در یوحنا باب پنج شروع میشه وقتی بابهای پنج تا هشت یوحنا رو میخونیم اینجا به غیر از تکالیف همیشگی تکلیف دیگری هم دارید. وقتی این چهار باب یوحنا رو میخونید و گفتگوی خصمانه عیسی با رهبران مذهبی را ملاحظه میکنید اگه به ادعاهای عیسی مسیح توجه کنید میبینید که هر بار او در مورد خودش ادعای میکنه میبینید دو در مورد هویت خودش ادعای میکنه یادتونه که یکی از اهداف یوحنا از نوشتن انجیلش این بود که به ما بگه عیسی کیه این یکی از جاهاییه که او واقعا به این سوال پاسخ میده که عیسی کی هست خود عیسی در این چهار باب به ما میگه که کی هست وقتی این چهار باب رو به پایان برسونید و به ادعاهای عیسی درباره خودش گوش کنید با لیست بلندی مواجه خواهید شد بعد وقتی ادعاهای عیسی رو مرور کنید به قول سی اس لوئیس استاد فقید ادبیات رونسانس در دانشگاه آکسفورد عیسی شما را با این سه گزینه مواجه کنه وقتی ادعاهای او رو ملاحظه می کنید یا میتونید او رو دروغگو خطاب کنید یا میتونید کمی ملایمتر باشید و او رو دیوانه خطاب کنید و یا تونید در برابرش سجده کنید و او رو خداوند خطاب کنید اگه عیسی تمام این چیزهایی که ادعا کرد نبود شما واقعاً نمیتونید بگید او مرد نجیبی بود، استاد بزرگی بود، رهبر بزرگ انسانها بود، یک چهره بزرگ تاریخی بود. اگه عیسی تمام این چیزهایی رو که ادعا می کرد نبود، پس او شخصی متقلب، شیاد و دروغگو بود. من فکر می کنم اگه به چیزهایی که او می باور نکنید، اگه رو راست باشید، به لحاظ اقلانی باید بگید او دروغگو بود. و یا میتونید بگید دیوانه بود، اما فریب کار نبود او به چیزهایی که میگفت باور داشت اما نمیتونست اون چیزهایی که ادعا میکرد باشه وقتی این ادعاها رو یاد داشت کنید با ادعاهای نظیر این مواجه خواهید شد تمام داوری به من سپرده شده است من پسر هستم و پدر من خدا بر کسی داوری نخواهد کرد من همه را داوری خواهم کرد او میگه هر کاری که خدای پدر میتونه انجام بده من هم میتونم انجام بدم تمام کارهایی که به خدای پدر نسبت داده شده من میتونم انجام بدم اگه شما ادعا میکردید که خدا هستید سوالی که باید از شما میپرسیدیم این بود او شما ادعا میکنید خدا هستید پس بذارید چیزی ازتون بپرسم میتونید خلق کنید؟ خدا خالق هست آیا شما هم میتونید خلق کنید؟ عیسی ادعا میکرد که خالق هست میتونستیم بگیم خوب خدا ابدی و عذلی هست او همیشه بوده و الان هست و همیشه خواهد بود. آیا تو ابدی هستی؟ آیا صفات خدا رو داری؟ در این گفتگوی خسمانه درست در پایان اون گفتگو اونا رو به عیسی می کنند و میگند تو هنوز 50 سال هم نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده و هستم آنها سنگ برداشتند که به سوی ایسا پرتاب کنند هیچ سؤالی در ذهن کسانی که این ادعاهای عیسی را میشنیدند در مورد این ادعاها نبود. اونها نگفتند تو تمام اون چیزهایی که ادعا کنی نیستی، اما مرد عجیبی هستی. اونها این کارو نکردند. در خاتمه وقتی او این ادعاها رو کرد، ایده میخواستند او را سنگسار کنند و بسیاری به او باور کردند. عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود. و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد وقتی او این ادعاها رو کرد مردم دو دسته شدند بعضیها ها می‌خواستند بعضی او را سنگسار کنند و بعضیها او را خداوند خطاب کردند و او را پیروی کردند و در واقع شاگردان او شدند وقتی عیسی در باب پنج با رهبران مذهبی وارد گفتگوهای خصمانه میشه بعد از اینکه برخی چیزها رو در مورد خودش ادعا میکنه چون اونها باور نمیکردند بهشون میگه شما شواهد کافی برای باور کردن به این چیزها دارید. اونا گفته بودند هیچ شاهدی نیست که تو همونی هستی که ادعا می عیسی در جایی از این گفتگوی خسمانه در باب پنج به اونها گفت مشکل شما مشکل اقلانی نیست. بلکه مشکل ارادی اخلاقی هست. البته این برداشت من از گفته عیسی هست و عین گفته عیسی در واقع این بود. اگر واقعاً بخواهید ادعاهای منو باور کنید، شواهد زیادی برای باورش در دست دارید مثلا یحیای تعمید دهنده چیزهای حیرت انگیزی درباره من گفت همه اونها اقرار کردند که یحیای تعمید دهنده یک نبی بود عیسی گفت یحیا بر من شهادت داد ما اینو در نوشته هایی در مورد می بینیم. عیسی گفت شما کارهایی رو که من کرده‌ام دیده‌اید او معجزات زیادی کرد در آخر باب دو یادتونه که او معجزات زیادی در اورشلیم به ظهور رسانید. او میگه شما معجزات منو دارید من این مرد رو کنار حوض بیت هستا شفا دادم شما کارهای منو دیدید و همه اون کارها بر من شهادت میدن بعد عیسی میگه شما شهادت خود پدر رو در تعمید من شنیدید خود پدر حرف زد و گفت این پسر محبوب منه بعد عیسی به کتاب مقدس مراجعه میکنه و به ما ای میده که کلید کل, کل کتاب مقدسه عیسی به این کسانی که علمای کتاب مقدس بودن میگه شما کتاب مقدس رو مطالعه میکنید چون خیال میکنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت. بعد او ای به ما میده که کلید کل کتاب مقدسه. او میگه در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد شما نمیخواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. عیسی میگه شما نزد من نمیایید چون تصمیم گرفتید که نیایید. مشکل شما مشکل اقلانی نیست چون عمدن نمیخواهید نزد من بیایید. اینجاست که میشه برداشت کرد که مشکل اونها مشکل اقلانی و عدم درک نبود، بلکه مشکلی اخلاقی و عمدی بود. یادم یه بار برای دانشجویان دانشکده حقوق جلسه بحثی رو ترتیب داده بودیم. با یکی از اون دانشجویان بحث تندی داشتیم و در یک آن به جای مشاجره احساس کردم که هدایت شدم به او بگم مسئله اینجا واقعا مسئله اقلانی نیست، بلکه عملا مسئله اخلاقی و ارادی هست. سوال اصلی اینه، آیا واقعا میخوای باور کنی عیسی مسیح و خداوند هست؟ آیا میخوای عواقب به اخلاقی پذیرش حقانیت مسیح رو بپذیری؟ اون دانشجو عقب نشست و آروم گرفت. من احساس کردم به هر حال مسئله فیصله پیدا کرده. بعد از اون چند نفر از دانشجویان نزد من اومدن و گفتند نکته اصلی همین بود. همه ما میدونیم که او معشوقهی داره که در واقع مسئله اصلی او هست. مشکل طرز زندگی او هست. مسئله اون مطالبی نبود که بر سرش بحث میکردید. مسئله طرز زندگی غیر اخلاقی او هست. مسئله این بود. وقتی متوجه مشکل بشید، مانع رو برطرف میکنید. عیسی هم در این گفتگوی خصمانه با رهبران مذهبی همین کار را انجام داد. او گفت شما شواهدی دارید، اما به این خاطر به من باور نمی کنید چون نمی خواهید باور کنید. در شریعت یهود، برای اثبات چیزی فقط دو شاهد کافی بود. عیسی به اونها پنج شاهد موضع انکارناپذیر را میکنه. عیسی به اونها میگه چطور میخواید باور کنید وقتی به جای تایید خدا دنبال تایید از یک دیگر هستید. در باب پنج یوحنا واقعا به این سوال که عیسی کی جواب میده. اما در عین حال به سوالات دیگری هم پاسخ میده. یادتونه که گفتیم در هر باب باید به این سوالات جواب بدید و یا دنبال جوابهای یوحنا برای این سوالات بگردید. عیسی کیه؟ عیسی یقیناً به این سوال توسط ادعاهای خودش در این چهار باب پاسخ میده. بعد این سوال هست، ایمان چیه؟ که اون هم همینجا پاسخ داده شده. ایمان اخلاقی و ارادی هست. ایمان اساساً اقلانی نیست. این چیزیه که عیسی در باب 5 درباره ایمان به ما میگه. بعد حیات در باب پنج چیه؟ جواب به این سوال ما را به عقب برمیگردونه به شفای مردی که کنار حوز بیت هستا بود. حیات تمامیت هست. باز همیسا به ما میگه حیات تولد دوباره هست. حیات آمدن به مسیح و رابطه‌ی با او و آگاهی از اینه که تایید او رو دارید. اینها جواب اون سوالات در باب پنج هست. وقتی به باب شش میرسید میبینید که این باب با یک معجزه شروع میشه. قضا دادن به پنج هزار نفر. ما این معجزه رو در بررسی اجیل هم نظیر ملاحظه کردیم بنابراین در این باب نگاهی گذرا اون خواهیم داشت و اون رو به طور امیق بررسی نمی کنیم اما به دنبال غذا دادن به پنج هزار نفر و خانواده هاشون که شاید روی هم بیست هزار نفر بودند عیسی سخنرانی بزرگی برای اونها میکنه. این سخنرانی بخشی از گفتگوی خسمانه با رهبران مذهبی هست. به این سخنرانی عنوان، نان حیات دادن در بحث نان حیات عیسی ادعا میکنه که نان حیات هست در باب چهار عیسی ادعا کرد که آب زنده هست و درباره یکی از اصلی ترین نیازهای بشر که تشنگی هست صحبت کرد عیسی میگه من آب زنده هستم که آتش شما رو تا ابد سیراب میکنم البته او داشت تولد تازه رو به تصویر میکشید و حیات ابدی رو که یوحنا میخواد ما هم تجربه کنیم در باب شش، عیسی از یک نیاز اصلی دیگه انسان یعنی گرسنگی حرف میزنه از نیاز به غذا. او میگه من میتونم این نیاز شما رو رفع کنم. عیسی ادعا میکنه که من آب زنده هستم و من نان زنده هستم. در باب شش او ادعا میکنه که نان حیات هست. این به عنوان یکی از مشکلترین بحث های ایسا مطرح شده. در پایان این بحث میبینیم که بسیاری از شاگردان او برگشته، و دیگه او را همراهی نمی کنن. او حتی رو به دوازده شاگردش می کنه و میگه آیا شما نیز می خواهید بروید؟ اینجاست که یکی از زیباترین جوابها رو برای این سؤال می بینیم که ایمان چیه؟ پتروس گفت سرور ما کجا باید برویم؟ سخنان حیات جاودانی نزد تو هست. هر کسی باید جایی داشته باشه و اگه ما با تو نباشیم پس کجا باید باشیم؟ پتروس منظور عیسی را نفهمید وقتی در پایان اون بحث عیسی گفت آمین آمین به شما میگویم اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید و هر که بدن مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید ها فکر کردند که او از آدمخوری حرف میزنه. به این دلیل خیلی ها او را ترد کردند و گفتند این برای ما سخت و پیچیده است من گمون می میکنم این بحث مانند دسته ای از پرندگان دور سر پتروس میچرخید و او درک نمی کرد عیسی داره چی میگه اما اینجا جواب بسیار خوبی برای اون سوال میگیریم که ایمان چیه ایمان یعنی باور حتی زمانی که درک نمیکنید اشعیا گفت خدا مانند انسان فکر نمی کنه و مثل او عمل نمی کنه پس توقع نداشته باشید خدا رو درک کنید کلام خدا افکار شما را به افکار خدا همسو میکنه. اما وقتی توسط کلام خدا به خدا نزدیک میشید، شید توقع نداشته باشید خدا رو درک کنید چون خدا با انسان فرق داره خدا انسان نیست خدا مثل انسان فکر نمیکنه و مثل او عمل نمیکنه. کنه پس اگه این درست باشه ما نباید انتظار داشته باشیم همیشه خدا رو درک کنیم سلیمان پرسیده خداوند راه زندگی ما را تعیین می کند پس انسان چگونه میتواند بفهمد که راه زندگی او به کجا ختم میگردد اگه خدا مثل انسان فکر نمی کنه و مثل انسان عمل نمی کنه و ما می خوایم به راه او بریم و به دنبال راههای او و اراده او برای زندگیمون هستیم نباید همیشه انتظار داشته باشیم راهی رو که میریم درک کنیم پتروس در لوقا 5 میگه من تو رو درک نمی کنم اما به هر حال تو رو پیروی می کنم. باید از خودتون چند سوال بپرسید آیا شما یکی از اون کسانی هستید که برکت یافتند یا با ذهنی پرسشگر لند شدند؟ آیا فقط به چیزی باور می کنید که اونو درک می کنید؟ به عنوان کسی که کشمکش های الهیاتی و اقلانی زیادی داشته از تجربیات خودم می دونم که خدا می تونه به شما چنان عطیه ایمانی بده که حتی وقتی براتون قابل درک نباشه باور کنید؟ آیا می از خدا چنین ایمانی درخواست کنید؟ و مایلید که چنین ایمانی رو به عنوان هدیه خدا دریافت کنید اگه شما حقایق الهیاتی رو وقتی حتی به لحاظ عقلانی درک نمی کنید باور کنید مثل حقایقی که خداوند در بحث نان حیات عنوان میکنه، اون وقت وقتی پاجه های غیرقابل توصیفی در زندگی خودتون و یا یکی از آشنایان یا عزیزانتون پیش میاد میتونید باور کنید که حکمتی در این نهفته هست. در باب شش انجیل یوحنا پتروس بود مهمی از ایمان رو برای ما به تصویر میکشه. در زندگی ایمانداران زمانهایی هست که سوالهای چرا منتهی به سوالاتی میشه که واقعا هیچ کس نمیتونه جواب بده. از شما دعوت میکنم که مثل پتروس باشید که حتی وقتی هیچ کدام از چراها رو درک نمیکنید، باز هم عیسا رو پیدا کنید. من بحث نان حیات رو که یکی از سختترین بحثهای عیسا در کتاب مقدس هست در معرض دید شما قرار دادم که در باب شش انجیل یوحنا ثبت شده. محققین معتقدند چیزی که عیسی در سختترین قسمت مباحثه نان حیات عنوان میکنه چیزی مثل اینه. عیسی وقتی از آب زنده و نان زنده صحبت میکنه نه تنها تصویری از تولد دوباره به ما میده بلکه جواب این سوال رو به ما میده که ایمان چیه. هر بار لیوان آب می نوشید تصویری از ایمان رو دارید. شما از تشنگی میمی می لیوانی پر از آب در دستتون نگه داشتید که میتونه شما رو سیراب کنه. چیکار میکنید که اون آب تشنگی شما رو سیراب کنه؟ باید اون آب رو با ایمان بنوشید و تجربه کنید که اون آب آتش شما رو سیراب میکنه. عیسی میگه من آب زنده هستم و شما تشنگی حیات هستید. چطور منو وارد رابطه ای با خودتون خواهید کرد که به اون وسیله بتونم تشنگی شما رو سیراب کنم؟ همونطور که آب می تا تشنگیتون رفت بشه باید منو به دست بیارید، باید به من ایمان بیارید و به طور شایسته با من رابطه داشته باشید، باید بیایید و منو پیروی کنید تا تشنگی شما سیراب بشه. عیسی در مباحثه نان حیات وقتی از بدن خود و از خون خود صحبت می‌کنه، در واقع همون چیز رو میگه. چیزی که او میگفت این بود. تمام مفهومی که مرگ من می‌تونه برای شما داشته باشه، مفهوم مرگ من یا خون من که باید بنوشید. اینه که باید واقعا ایمان بیارید. باید واقعا و حقیقتا اون رو درک کنید و باید اون رو وارد تجربیاتتون بکنید. واقعیت بزرگ دیگر در مورد عیسی زندگی او بود. او همونطور که در سرودهای کریسمس میشنوید متولد شد که بمیره. اما همینطور متولد شد که زندگی کنه. عیسی به طور خارق ای بر روی زمین زندگی کرد تا فیض و حقیقت رو به ما نشون بده و به ما نشون بده آنگونه که قصد خدا برای ما هست زندگی کنیم. وقتی زندگی مسیح رو در اناجیل میبینید، در واقع به حیات ابدی نگاه میکنید. وقتی عیسی میگه باید بدن منو بخورید، او به تصویر دیگری از ایمان اشاره میکنه. او اینجا در باب شش به ما میگه من نان زنده هستم و شما گرست نید. شما چطور با اون نان رفتار میکنید تا گرسنگی شما را برطرف کنه و سیر بشید؟ اونو میخورید اونو صاحب میشید، دریافت میکنید حیات من، حیاتی که اینجا به مدت سی و سه سال زندگی میکنم به شما نشون میده که چطور گرسنگی خودتون رو نسبت به حیات رفت کنید زندگی من به شما نشون میده که خدا انتظار داره شما چطور زندگی کنید شما باید به زندگی من واکنش شایسته نشون بدید شما باید زندگی منو به خودتون بگیرید به عبارت دیگه باید بدن منو بخورید یعنی از زندگی من بهره من بشید و شما باید از خون من بنوشید یعنی باید از مرگ من بهره من بشید وگرنه این حیات ابدی رو در تجربیات زندگی نخواهید داشت اما وقتی عیسی در مورد نان حیات صحبت میکرد پتروس منظور عیسی رو تماما درک نکرد اکثر شاگردان او این بحث رو درک نکردند بسیاری از اونا او رو ترک کردند و دیگه او رو پیروی نکردند چون دوامنه ایمان اونا تا اونجا بود که چیزی رو باور میکردن که میتونستن درک کنند. من معتقدم پتروس عتیقه ایمان داشته چون او گفت ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای هی هستی. زمانهایی هست که ما باید پل ایمان بنا کنیم. وقتی به جایی میرسیم که درک نمی کنیم، باید پلی از ایمان بسازیم. گاهی ما در نور با علائم راه میریم، اما گاهی مجبوریم در تاریکی با ایمان گام برداریم. باب شش انجیل یوحنا در مورد نان نیست. اگرچه به اون مباحثه نان حیات گفتهاند، نظریه ای هست که طبق اون باب شش یوحنا در مورد کار هست. زمینه ی نان حیات رو ملاحظه کنید. عیسی با این مردم درباره کار اونها وارد گفتگوی خسمانه شده و چیزهای تندی به اونها گفته. به اونها گفته کار شما بیمعنی هست، و از این گذشته انگیزه شما هم برای کار بی معنیتون نادرست هست اونا پاسخ دادن کار پسندیده خدا چیه؟ عیسی گفت شما به من ایمان بیاورید و من به شما نشان خواهم داد که کار پسندیده خدا چیه ؟ بعد اونا گفتن در طول روز چیکار کار میکنی؟ اگر تو کسی هستی که میتونی بگی کار پسندیده خدا چیه خودت در طول روز چیکار میکنی؟ در این مباحثه نان حیات ایسا فلسفه خدمتی خودش رو با ما در میون میذاره او در مورد کارش با اونها حرف زد و چیزی گفت که بسیار عمیقه عیسی گفت من این می میکنم من در این جهان حرکت میکنم و وقتی خدای پدر به من میگه با مردم صحبت کنم صحبت میکنم من هر چیزی رو که او بگه به اونها میگم بعضی ها من منو رد میکنند. اونها در هماهنگی با خدا نیستند و اصلا صدای منو نمیشنون اما وقتی من کلامی را که پدر به من میگه با مردم در میون میذارم کسانی که توسط روح القدس جذب پدر میشن کسانی که تجربه با روح القدس دارن برای اونها اون کلام روح و حیات هست. وقتی اونها این کلام رو میشنوند، به حضور خدا میان این کاریه که من در طول روز انجام میدم من فکر میکنم عیسی برای اون افراد و برای ما از چیز مهیجی صحبت میکنه او بعدها هم در مباحثه بالاخانه در انجیل یوحنا از همین با ما صحبت خواهد کرد که این امکان وجود داره که وسیلهی بشیم که خدا توسط اون کار خودش رو پیش ببره. کار خدا پرمعنی ترین و پسندیده ترین کاری هست که من و شما میتونیم انجام بدیم. این بدان معنا نیست که همه خوانده شدهاند تا واعظ باشن یا یه مبشر باشن. اما فکر میکنم به این معنا هست که هر کاری که میکنید باید به این خاطر اون کار رو بکنید که ایمان دارید خدا شما رو اونجا قرار داده تا اون کار رو پیش ببرید. او شاید شما رو یک مادر خلق کرده شاید یک مهندس یا مکانیک قرار داده اما هر کاری که میکنید باید این اعتقاد رو داشته باشید در جایی قرار دارید که خدا شما را برای انجام اون کار فراخونده شاید شما یک مادر باشید خدا نمیخواد همه واعظ باشن خدا ما رو در هر جا که نیاز هست میخواد یکی از راه که خدا ما رو در جای مورد نیاز قرار میده اینه که ما باید امرار معاش کنیم این ما رو مجبور میکنه که به مکانهای محل کار بریم و در اونجا از کسانی باشیم که به حیات ابدی نیاز مندن و نیاز دارند که به عیسی مسیح هیمن بیارن. این همون کار پسندیده خداست که عیسی در مپس نان حیات از اون صحبت می‌کنه. براساس تجربیات کار خود من با مردم فکر می‌کنم یکی از بزرگترین آفات امروز ما خستگی و ملالت هست. از تعداد افراد خسته ای که می‌بینم تعجب می‌کنم. کسانی که فکر می کردن باید خیلی موفق باشند چون به نظر می رسید کارهای مهیجی انجام می دن. اما وقتی با اونا آشنا شدم فهمیدم که بسیاری از اونا از کاری که میکنن خسته. این یکی از خاطرات یکی از سیاستمداران هست که تقریبا چیزی رو بیان می میکنه که من از عدی زیادی شنیدم. مثل خیلی از سیاستمداران مداران انگلیسی او مدتها قبل در دفتر خاطرات روزانهاش نوشته، حالا که در 88 سالگی، به گذشته و به پنجا سال زندگی و تجربیات سیاسی هم در انگلستان نگاه میکنم چیزی که من اون رو بهترین دستاورد می دونستم وقتی بر تاریخ بریتانیا در دنیا از سال 1914 تعمل می کنم به وضوح می بینم که عملا کاری انجام ندادم دنیای امروز و تاریخ مدنیت در پنجا هفت سال گذشته در واقع عین هم بوده و گوی این سالها من به جای شرکت در کمیته‌ها و نوشتن کتابها و نظامنامه ها فقط پینگ پونگ بازی کردم بنابراین باید برای خودم و هر کسی که این رو میخونه این اعتراف مفتزهانه رو بکنم که در یک زندگی طولانی بر روی زمین حدود 150 تا 200 هزار ساعت کار کاملا بیمعنی انجام دادم وقتی عیسی آمد که ما رو نجات بده او آمد تا ما رو از خیلی چیزها نجات بده یکی از چیزهایی که آمد تا ما رو از اون نجات بده کارهای بیمعنی بود من معتقدم کسی که درک میکنه عیسی کیه ایمان چیه و حیات ابدی چیه چنین چیزی روی سنگ قبرش نوشته نخواهد شد تمام زندگی من صرف کاری کاملا بیهوده گشت خدا نمیخواد ما در 88 سالگی چنین سنگ نوشته‌ای داشته باشیم به این دلیل ایسا مبحث نان حیات رو برای ما مطرح کرده ایسا واقعا در قلب مبحث نان حیات در مورد کار خداپسندانه با ما صحبت میکنه این گفتگو ادامه پیدا میکنه و بعد ایسا این ادعا رو میکنه من معلمی هستم که از جانب خدا آمدم تعالیم من از خودم نیست اونها از جانب پدر هستم به عبارت دیگه او این ادعا رو میکنه که من فقط یک معلم معمولی نیستم که عقاید انکار نپذیری داشته باشم تعالیم من از خودم نیست تعالیم من از خداست وقتی عیسی این رو ادعا می کرد رهبران مذهبی این رو نمیپذیرفتند. اونها میگفتند از کجا اینو بدونیم ما فقط حرفهای تو رو شنویم این سوالیه که امروز ما هم با اون مواجهیم که میگیم این کتاب انجیل کلام خداست خیلی‌ها هستند که میگن از کجا بدونیم که این کلام خود شما نیست چون شما به اون ایمان آوردید از کجا بدونیم این کلام کسانی نیست که دو هزار سال پیش زندگی میکردن؟ از کجا بدونیم که انجیل واقعاً کلام خداست؟ شیطان در کتاب پیدایش سوالی پرسید. آیا واقعاً خدا چنین چیزی گفته؟ خب اگر هم گفته حقیقت نداره. این قدیمی ترین حیله شیطان هست که هنوز همون رو به کار میگیره. هر روزه و در تمام لحظات روز شیطان با این مسئله مخالفت میکنه و ما رو به چالش میکشه آیا واقعا انجیل کلام خداست؟ وقتی اونها در این نکته عیسی را به چالش کشیدند و گفت موضوعی که باید با اون مواجه بشیدین ایمان اقلانی نیست ایمان ارادی و اخلاقی هست عیسی اینو اینطور مطرح کرد او در جواب ایشان گفت تعلیم من از من نیست بلکه از فرستنده منه اگر کسی بخواد اراده او رو به عمل بیاره درباره تعلیم او خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خودم سخن میگم به عبارت دیگه عیسی گفت تنها کسانی صلاحیت دارند درباره الهامی بودن کتاب مقدس اظهار نظر کنند که با اشتیاق برای انجام اراده خدا به کلام خدا نزدیک میشن و میگن خدایا من میخوام کاری رو که درست هست انجام بدم نه مثل اون دانشجوی حقوقی که قبلا از او صحبت کردیم که نمیخواست کار درست رو انجام بده عیسی گفته کسانی حق دارند درباره الهامی بودن کتاب مقدس نظر بدن که با این طرز فکر به کتاب مقدس نزدیک بشند که من واقعا میخوام کاری رو بکنم که درسته من واقعا میخوام اراده خدا رو به انجام برسونم ایسا گفته تعلیم من از من نیست بلکه از فرستنده من هست اگر شما بخواهید اراده او رو به عمل بیارید درباره تعلیم من خواهید دانست که از خداست یا این که من از خود حرف میزنم مثلا فرض کنید شما با همسرتون به دیدن شبانتون رفتید چون ازدواج شما خیلی کسل کننده شده، بیسمر و بی روح شده. چون شما با این دیدگاه ازدواج کردید که چیزی از طرف مقابل بگیرید و در نتیجه هیچ کدام چیزی هم دریافت نمی کنید و این ازدواج بسیار وحشتناکیه. نزد شبان میرید و شبان میگه میدونید که عیسی گفته دادن از گرفتن فرخنده تر هست؟ شادی بیشتری در دادن هست تا گرفتن؟ شما نباید شب خسته از کار روزانه به خانه بیایید و فکر کنید الان که به خونه برسید، همسرتون لذیزترین غذاها رو براتون آماده کرده و خانه رو ترتمیز و مرتب کرده و با شما مهربون خواهد بود. شما در طول روز با کسانی حرف زدید که دلتون نمیخواسته حرف بزنید و روز بسیار سخت و کسل کننده ای رو پشت سر گذاشتید. و الان تنها چیزی که نیاز دارید، خانه ای ساکت، تمیز، زیبا و یک قروب آرام در خانه هست. به عبارت دیگه شما به چیزی که از همسرتون دریافت خواهید کرد فکر میکنید. همسرتون پشت اجاق ایستاده و فکر میکنه من تمام روز رو با بچه ها سر و کله زدم و با یه آدم بزرگ صحبت نکردم. وقتی همسرم پا به خونه میذاره بهتر با من مهربون باشه و شاید حتی هدیهی برام بیاره. به عبارت دیگه او هم به چیزی که از شوهرش دریافت خواهد کرد فکر می کنه. وقتی دو نفر با چنین خصوصیاتی در انتهای روز به هم میرسن این مثل از ریل خارج شدن یک قطار با حرکت آهسته است چون هر دو میخوان دریافت یافت کنند و هیچ کدوم نمیخوان چیزی بدن حالا برعکس اینو تصور کنید فرض کنید اونا مشورت شبان رو پذیرفتن و وقتی اون مرد از سر کار به خونه برمیگرده به زنش فکر میکنه که او تمام روز رو توی خونه با بچه ها مونده آشپزی کرده و حالا نیاز داره که کمکش کنم و حرفاش گوش کنم، او رو درد کنم و بعد تصمیم میگیره من به تمیز کردن آشپزخونه خونه کمک خواهم کرد. مهم نیست که چقدر خسته هستم و فرض کنید زن هم توی خونه داره فکر میکنه اون مرد بیچاره دوست نداره تمام روز رو با مردم سر و کله بزنه اما مجبوره و تمام روز رو با مردم صحبت میکنه. او تمام مدت بیرون از خونه کار میکنه تا نیاز من و بچه ها رو به بهترین شکل ممکن تأمین کنه. و تمام روز رو در سختی بوده و نیاز داره که تو خونه باشه حالا فرض کنید وقتی اونها همدیگر رو میبینن مرد میگه اشقم روزت چطور گذشته چه کمکی میتونم بهت بکنم و زن میگه نه نه نه نه این صندلی راحت توه بشین و استراحت کن من شام علاقت رو آماده کردم خوشحالم که سالم به خونه برگشتی این نوع بحث ها ازدواج ها رو از هم نمیپاشه اینجور بحث ها هستند. من زوجهایی رو دیدم که بعد نزد شبان برگشتند و گفتند میدونید دونید همون یه تعلیم زندگی روابط ما رو متحول کرد. به جای اینکه بر خودتون متمرکز بشید به طرف مقابل تمرکز کنید. و حیرت انگیزه که چقدر ازدواجها به خاطر این تعلیم جان دوباره یافتند. من به اونها میگم عیسی ایسا 500 تعلیم داره و من 499 و نود نه تای دیگش رو هم مثل همین دوست دارم. و حالا تعلیم شماره دو این یکی رو امتحان کنید عیسی گفت اینطوری میتونید ثابت کنید که تعالیم من از جانب خداست تعالیم من کلام خداست شما با این اراده به تعالیم من نزدیک بشید که اونا رو انجام بدید امتحان کنید بهتون قول میدم اونا رو دوست خواهید داشت به عبارت دیگه او داره میگه مسئله اقلانیت نیست مسئله اراده شماست اقلانیت همیشه گفته وقتی در ذهن من جا گرفتی اراده هم رو به حرکت خواهی آورد. منو به لحاظ اقلانی متقاعد کن و من با اراده و تعهد به طرفت خواهم اومد. عیسی میگه نه، برعکس. با اراده متعهد شو، بعد تایید اقلانی به دنبالش خواهد اومد. اطمینان اقلانی بعد از تعهد اقلانی خواهد اومد. اگه کسی ارادهش رو همسو با اراده خدا بکنه، خواهد فهمید که تعالیم از خدا هستند و یا از جانب انسان هستند. امروز به حضور ایشا بیایید و بگید من میدونم تو آب زنده هستی و میتونی تشنگی منو سیراب کنی میدونم تو نان حیات هستی که میتونی گرسنگی منو رفع کنی کمک کن تو رو پیروی کنم و لذت زندگی رضایتمندانه و لذت تولد دوباره رو تجربه کنم وقتی اینو تجربه کردید به دیگران هم بدید با شبان و یا رهبرتون صحبت کنید و به این کلاس ها ادامه بدید تا بتونید در ایمانتون رشد کنید دوستان آیت حالا شنیدید که شما همون چیزی هستید که میخورید یا کسی رو میشناسید که به بعضی غذاها حساسیت داره چیزی که ما میخوریم میتونه به لحاظ جسمانی و روحی بر ما تاثیر بذاره و با استفاده از این مسئله به ما تعلیم میده که هر روزه اون رو به عنوان نان حقیقی وارد زندگی هامون کنیم وقتی ایسا رو به عنوان خداوند و ناجی خودمون میپذیریم، او وارد زندگی ما میشه و از هر لحاظ بر ما تأثیر میذاره. بر جسم و بر افکارمون و بر احساساتمون تأثیر میذاره. دعای اینه که شما از نوع متولد بشید و ایسا رو بپذیرید تا زندگی شما بشه. تا برنامه بعدی، عزیزان دعا میکنیم تشنگی و گرسنگی روحانی شما سیراب بشه.